حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای یه روزه به تر بلک هواداره چون بلدی بخندی با چشم دل ببازید با اش دل ببندید اجوا که دل به سبزه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا به که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی خوشین؟ من فرشید منافی اینجا رادیو پس فردای شماره 940 فقط شهست برنامه دیگر از رادیو پسفرداباقی است چه خبر ها؟ خوش میگذره همه چی خوبه؟ ما هم هیچی خبری نیستی که مهرسا و سعیدم رفتن و بازم استودیو سوتوکور کور شدو دیگه شهرام هم نیست، لال فقط منم سامی، هیچ کی نیست الان، هیچ کس. ولی دیگه بچه ها رفتن، های خوبی بودن ها، سوتو شد دور استادیومون. اون دفعه سارا و الی آمده بودن، فرداش که نبودن انقدر سوتو کور بود. سیویل پارتی به اتمام رسید خلاصه. به خدا ای دست من بود این هم یه خورده بزرگتر بود. مثلا اندازه استادیوم بود استادیوم ما. هر چهار اصلا دعوت می‌کردیم برای همکاری می دیگه. ولی خب نمیشه دیگه نمیشه سلام جون میگم صدای کارامودات چقدر خوبه خودشون هم خوبم فکر کنم نه بله تو نمیگیرن ولی شاید بتونن یکم جاتو بگیرن بذار بیشتر صحبت کنم و یه کم فیز ببری بله دیگه صحبتشون دیروز و پریروز کردن و ولی خیلی کار دارن صداهاشون خامه نپخته است کال سوهان نخورده است ولی خب بعد برحال روی تارهای صوتی اینا سنباده بزنیم تا صدای شاگسته گوش شنوندگان عزیزمون در بیاد دلخوش خوش به این مقدار نباشید اما اما همین الان در همین لحظه میخوام اسم دو نفر برنده نهایی لیگ رادیویی پسفردار رو تو زهنم مجسم کنم بهش فکر کنم ولی نمیتونم بگم الان که <تصفيق> چون فعلا تو مرحله تصمیم گیری هستیم هنوز انتخاب نکردیم ولی به زودی دوتاشون برمیگردن استدیو پیش ما حالا یا یه خانوم یه آقا یا یه آقا یه خانوم یا دوتا آقا یا دوتا خانوم یا دوتا خانم یا آقا یا دوتا آقای یه خانم کی میدونه؟ هیچی نمیدونه نمیدونه جلالم نمیدونه خود منم نمیدونم زامی تو میدونی؟ سامی هم نمیدونه هر چیزی احتمال داره و همه گذیناها روی میزه یعنی انقدر شرایط حساس ها. خیلی حساسه سامی جان برو بریم که امروز همه حساسیم برو بری <تصفيق> اگه فردا مثلا بخوام بیام واقعا اعلام کنم میشم چوپان و دروغگو همه میگن آ باره اینکه این نمیخوای بگی که ولی میام یه دفعه میگم حالا ببین چی کی گفتم احتمالش هست حالا فردا بگیم تو برنامه دیگه حالا ببینیم چی میشه از فکرامونو بکنیم خیلی سخته به خدا همشون خوب بودن هر چهار خوب بودن انقدر هر خوب بودن که خیلی کارو برامون سخت کرده ولی چیکار کنیم که ناچاریم انتخاب کنیم حالا ببینیم چی میشه یا فردا یا شنبه یا نمیدونم نمیدونم امیدواریم فردا امیدواریم اما امروز در سومین روز از بررسی مدرنیسم در جامعه ایرانی میخوایم به تاثیر مدرنیسم بر وضعیت سلامت ایرانیا بپردازیم ببینیم این دستاوردهای مدرنیست بالاخره باعث کاهش مرگ و میره شده یا بر عکس مرگ می رو کرده پس سلام مخصوص داریم خدمت همه پزشکان متخصص و فوق تخصص و دستن در کاران صنعت دارو و درمان و یه سلام چندان مخصوص ها همجوری یا از سر رفت تکلیفی و اینا میخوایم داشته باشیم خدمت فروشندگان فصل بود. تولید کنندگان چیپس و پفک و نوشابه و سایر خوردنی ها و نوشیدنی های غرنبیس و که با تولیداتشون کاری میکنن که متب اون دسته اول که بهشون سلام کردیم کل مخصوص قیل هم ارادت داریم بهشون همیشه کیپ تا کیپ پر از مشتری باشه خیلی جدا و خیلی پایین روی منفی و اینا. هر چند این بچه‌ها میگه و این کولر گازی رو خاموش کنید. هواش نمی‌کنه. دما اینجاست 38 نیوزلند. خیلی نامردی. خیلی نامردی این کار. یعنی اصن خیلی کار اصن چرا این کارو می‌کنین با ما؟ من تازه خیلی خوشحال بودم بالاخره شما یه جای زمین می‌زنید که اینا ما مثلا هواش منفیه و سرده و اینا. برین چیکار می‌کنن؟ نامرده. اما با توجه به اینکه که معظم له ما در مورد همه چیز از زخم کف پا تا بمب اتمی نظرات خودشون رو تو چشوچار رو همه می کنن در زمینه ورود مدرنیسم به تفریحات و بازی های بچه ها هم ایشون چند وقت پیش بیاناتی و توصیه هایی فرمودن مثلا ایشون مورد در مورد اسباب بازی های جدید بچه ها اینگونه فرمودند که اسباب بازی های رائج بچه های ما شده تفنگ خب بابا آمریکایی‌ها که پدرجد ما تو این کارن الان پشیمونن توش در موندن که چه کار کنن حال ما نفهمیدیم آمریکایی‌ها از نظرشون ایشون دقیقاً پدر جد چی بودن ولی خب مسئله اینه که همین نظام مقدس هم اگه لازم باشه به بچه‌ها اسب اسباب بازی که سهل تانکش هم میده آقا مایی دوره جنگ نبود قبل از تعطیلات عید میومدان بهمون یه خلکایی میدادن شبیه تانک برید از ایدیاتون این تانک ها رو پر کنید برید تحویل بدید اما ما از زمله به جای توفنگ یک جایگزینی, های، یک جایگزینی های دیگه ای رو هم معرفی کردن برای بازی های بچه گانه ما بچه های خودمون رو که الکتولک بازی کردند که تحرک داشت و خوب بود گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود یا این چیزی که اسمش چیه خطکشی دو و یک, یک... لی لی. لیلی. لیلی میکنن. بازی بچه ما اینا بود بله آقا دیگه اسم برد و دیگه حالا دیگه فردا ستاده الک دولک و نمیدونم مرکز گرگم به هوا و لیله هم اینا تو وزارت ارشاد تحسیص میشه اتمالت هر کدومم کلی بودجه بهشون اقصاج پیدا میکنه بیان این ستا ورزه شماا بین بچه ها جا بنداازند خلاصی که خدا بداد بچه های این خانواده های بلایت مدار برسه دیگه از فردا دیگه همه چی تعطیل و پ اکس باکس والانه اینا نداریم همه می تو انبارری دوتا چوب میدن از بچه به تو کوچه الک دو بازی کنید. یعنی همه این بچه ها از تیررس بیانات رهبر فرزانه تا الان در امان بودن که اینام دی گرفتار شدن بنده های خدا رو ببینطور خدا. فرشید جان یادت اوه. هفته پیش به تخت خواب بنده نفوس کردی. ای بله،, بله بله خوبی اشگال ندیم بله. شنیدم که الان دممای هوای براک خیلی سرد شده شده از اصای اخباندان خاصم به تلایتون برسونم که اینجا الان درجه حرارت 26 درجه سانتیگرات هست بله. هوای بسیار خوب آفتابی عجیب. بحب. ساحلی عجیب از همه چیز تفاوت تفاوت‌های فرهنگی عجیبه اینجا که خیلی خوبه تو این هوا راستو هستم از برزیل دوست داشتنی به به به به ولای اینا ولش کن هوا هوا فلان اینا صدا چقدر انقدر جذاب شده تو چی جریان خیلی سکسی تو اینا اینا ولا آقا زن و بچه مردم بچه‌سان پای رادیو آقا هوای برزیل ساخت خب تو لیگ رادیویی شرکت می‌کردی خب دیگه ناغولا و اما یه خود از آب و هوا بگیم که از فردا مقدار اوزا قرار تو شمال غرب و غرب کشور به هم بریزه و نه نه دایش نبا میگم آب و هوا رو دارم میگم دیگه فردا کلی رگبار و رعد و برق و حتی برف قرار رو داشته باشیم اینی که دوستان ساکن آذربایجان غربی و نیمه غربی کردستان و کرمانشاه و ایلام و لرستان و شمال خوزستان اونورا آماده باشن ترجیحاً تو مناطق کوهستانی سعی کنی رانندگی نکنین که اگر از سائقه قصر در برین تو برف گیر میافتین گفته باشم این از این اما این ابرا میگن کم کمی قرار همجای چارچنبه تا وسطای ایرانم بیان جلو که حالا فرد شب بهتون میگیم تا کجاها میان جلو دیگه همین دیگه فعلا بقیه جا هوا جوجی کبابی خواهد بود هوا جوجی کبابی میدونین چیه که قبلا گفتم بهتون دیگه همون همون بریم حالشو ببریم بریم موسیقی por a you love place Such a sonar, vela, soy vos, soy corredor, de lovely place و گاتو سی کالیفرنیا و پلیس بریم سراغ رادیو پاس شماره 940 مدرنیسم و سلامت دردم مزون است و درمان نیست هم بایو یی یی شماره 940 بدانید و آگاه باشید همانطور که که پیشرفت‌های علم پزشکی از نتایج و ثمرات مدرنیسم است کم‌تحرکی و فستفود و چاقی و استرس و آلودگی و هزار درد و مرض دیگر نیز روی دیگر سکه مدرنیسم میباشد و این روی دیگر چنان است که گاه آدم به فکر میافتد عطای مدرنیسم را به لقای این همه درد و مرض ببخشد و برای گذران عمر راهی کوه و بیابان شود که در این امر نشانه‌هایی برای آنان که به فکر سلامت خود هستندگانند این نمی چی بود هستندگان. امزاو جمعی از توی کو و کمر بزرگ شده ها و میانگین سنیشون زیر صد سال نبوده ها و به دکتر و دوا درمون و اینام شکر خدا هیچ نیازی هیچ وقت نداشته های رادیو هست قدیما ما قدیم در دوران پیشها مدرنی، اصولا انگار یا میکروب هنوز اخترا نشده بود یا اینکه سیستم ایمنی آدما اون موقع چیزی تو مای مثلا سیستم ضد ناتو بوده که پرندهرم رو هوا میزده مثلا میدیدی آدما هفتاد درصد دوره کودکیشون رو تو جوبه آب میگذوندن. به خدا اون سی درصد دیگه هم داشتن در و دیوار و درخت و کوه و دمن و دشت و اینا بالا میرفتن و غرق در گرد و غبار و خاک و عرق و اینا بودن و همه چی می به جز مریض. بعد بچه های مدرن الان کللا چیزی به اسم کوچه که براتونون فقط به عنوان یه محل عبوره که به درب خانه مونطی میشه بعد نه زمین فوتبالی میرن نه پارکی نه کوهی نه دشتی نه دمنی ولو شدنی دختر بازی دکتربازی بازی دکتر بازی تو خب برقیی از این بازی هایی که اشاره کردم شنیده شده که هنوز هم به شیب های مدرن و صد البته پیشرفته تر داره انجام میشه خدار شکر ولی حرف اینه که بچه ها... بیشتر در شرایط فوق استریل داخل منزل داخل ماشین داخل مدرسه کلان داخل همه چیز به طور کلی به سر میبرن خیلی استریل طور بعد یهو هم می‌بینی همین بچه بیماری خفنی می‌گیره بعد ببرینش پیش خود برنده جایزه نوبل پزشکی سال دا درمانش کنه چیه؟ بچه سیستم ایمنیش میکروب که سهله هیچ روب هم ندیده تا حالا اینه که خب مریض میشه دیگه حالا البته خداییش بهداش یکی از مواهب خیلی مهم دوران مدرنه ولی خداییش تو اون اون کلکسیفی و اون درداغونی و این اون دوران قدیم هم یه صفایی بودا که با یه من الکل تبی و مرکور کروم و هم دواگلی و اینا هم نمیشه ایجادش کرد مگه نه؟ و توجه به موضوع انشا و قلم خود را کناری نهاده با کیبورد کمپیوتر خدرتمند خود انگشتان ظریف اما مردانوی خود را بر بردکمه فشرده و انشای خود را با موضوع از مدرنیسم هرچه میدانید بنویسید آغاز می نمایم به نظر ما یکی از مدرنترین موجودات عالم هستی خوهر گرومی ماست چون ایشان الان در اتاقش هیجده مدل سه شهار دوازده مدل اوطوی مو و یازده مدل شانه مو دارد و با این وجود همیشه هم نالان است که این سه شهارهایی که دارد نمیتواند ابعاد نامتناهیی زیبایی موهای او را نشان دهد و به همین دلیل هم همیشه از نداشتن سه شهار مناسب مینالد البته مو از مسئولین تقاضا دارد که یک دستگاهی بسازند یا آدم قبل از رفتن به مهمانی یا خرید یا عروسی یا تولد یا قرار برا و تویش بنشیند و در که تلگرام بازی میکند آن دستگاه ایشان رو از اینی که هست هم خوشکلتر و موختر و تو دل برو تد نماید پدر عزیز ما آقا متقد است این مدرن بازی ها اینا همش تلک پول است و اینا که نمیدونیم کیا هستند، با این جنگولک بازی ها میخواهند جیب آدم رو خالی کنند با این وجود وقتی ایشان با پدیده ماشین زرفشویی آشنا شدن سریع یک عدد از آنها رو خریداری کرده در خانه نصب کردند و وقتی ما دلیل این مسئله رو از ایشان پرسیدیم پدر عزیزمون گفتند که از بس این سوال ها در آشپزخانه ظرف شدند مهره دوم کمرشان به مهره سوم گردنشان اتصالی کرده دیگر طاقت بشور به ندارند و آدم مگر چقدر اوم می کند که نصفش رو باید پایسین که آشپسخانه در حال صحبیدن دیس و بشقا بگذراند مدر گرامی مو هم فکر می کند اصولاً چیزهای مدرن همه در خدمت مرد و هیچ چیزی در وسائل مردانه نیست که به درد زنها بخورد و وقتی ما ایشان اشاده کردیم که مادر عزیز من مثلا این که الان شما قبض براغت را با اینترنت می دهید که دیگر زن نذرات ندارد به درد همه میخورد بعد ایشان یادشون افتاد که اگر ما الان سه شبانه روز از برق منزل ما من قد شده به خاطر این است که ایشان یادش رفته قبض برق رو بده و این که هی به اداره برق زن میزنه و به اول آخری آنها میکشه مشکل بیبرقی خونه ما رو حل نمیکنه آقا جزه در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که مدرن شدن جنبه میخواهد ولی چون جنبه داشتن سختی است پس کاریش نمیشود کرد و ما به خانواده عزیزمان که به ماشین زرفشوی و سشوار به شدت احساس مدرن بودن میکنند خیلی افتخار میکنیم چون دیگه کار دیگه از امون به نمی آید نقطه آجازه تم شد. این هفته به ما بگین نظرتون در مورد مدرن شدن ای مثل جامعه خودمون چیه از تجربیات خودتون دوروبریاتون در مواجهه با پدیده های مدرن بگین حالا میخواد تکنولوژی باشه مثل گوشی های جدید و سمارتفون ها و اینا و نمیدونم چت کردن پدر بزرگ مدر بزرگ ها یا مدرنیت فرهنگی باشه فکری باشه هر چیز دیگه ای بگین تاثیر دنیای مدرن در نهایت برای خودتون و اطرافیانتون و جامعه به نظرتون مثبت بوده یا منفی بوده این هفته هم منتظر جوابتون هستیم بفهمیم بالاخره این مدرنیته به درد جامعه سنتی ایران خورده یا برامون شده گوز بالا گوز؟ سلام علیکم میدونم این بیشتر قرب زدگی و جو گرفتگی به حساب میاد تا مدرنی. چی اما از هفته پیش تو گلم گیر کرده بود بعد میگفتم جو این باقالی پلو با بوغلمون هشتگ تانک اسکیوینگ دیگه چیه <تصفيق> میدونیم به منم بگین <تصفيق> آقا راست میگه خب نکنین دیگه آقا باقالی پلو با بوغلمون میخورین بخورین ولی دیگه هشتگ نزنید تانک عجیبه حال حالا دیدین یه آمریکایی شب عید مثلا سبزی پول اوختاپوس بخوره بعد هشتگ بزنه مثلا شامه شب عید دی نمیزنه دیگه کارایی میکنن دکتر دکتر منیژه زیبا کمر متخصص گوشت و پوست و مو از شهر شهید پرور و هزار سنگر آمول امضا کردن پایه اینا بر بچه‌ها امضایی امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون اپلیکیشن داریم ما اونایی که نمیدونن اپلیکیشن اونایی که آیفون دارید آیپد دارید میتونید رادیو پسورددار سرچ کنید اپلیکیشن ما رو دانلود کنید هم زنده بشنوید هم میتونید دانلود کنید بشنوید هم میتونید برام پیغام بذارید همتون میتونید کامنت بذارید خیلی کار دیگه حاج حاجلی از قلب پسرش آریو از رشت محمد, محمد محمدی مملی ام ام ایران مازندران قایم شرک کوچه ارکیده الانه که بیان منو ببرن دیگه دیگه دفعه میدادی دیگه پلاکت هم دیگه شابول از تهران پای ثابت رادیو پسفردا هما مهرشهر اسیو عباس حسین غل حکدره سجاد از کرمان علی جیم از دوبی مریم سیزده سیزده ارتش تهران رضا نونوا مشهد جلو نونوایی سیاب و لیلی از ترشت تهران، الناز امیدی از اصفهان، فرشید دوست دارم، سمیر و بهمن از آلمان، ارسلان پسر ارغوان و نوید 10 ساله از تهران، نوید و ترگل و سحر از اصفهان، حسین محمدی نوبت من بخون، باشه دیگه از ایران روستای گلیخون مسجد سلیمان، پریورد کبیر از تبریز نشان من از وطن، امضا کردن چه امضاهای عجیبی ای بابا منافی عزیزی از تیم قدر قدرت رادیو پاسوردا سلام من تابستون امسال با صحنه خیلی جالبی تو ایران مواجه شدم دوستان عزیزی در گرمای تابستون تو بنز کلاس S خودشون داشتن خودشون با باد بزن حسیری باد می‌زدن حالا یا بلد نبودن این کولر رو, رو روشن کنن یا می‌خواستن کولر ماشینشون سابیده نشه من نمی‌دونم واقعا چی بود من نمی‌دونم مسئله دیگه در مورد غذاهایی هستش که اخیرا در ایران حالا باب شده که قیافه هاشون خب همون قیافه خاصی طعمشون مثلا هیچ ربطی نداره یا حالا مشکلدار هستش به طور مثال سوس سالسا خوب شبیه سوس سالساست ولی خب آخه سوس سالسا خیار نداره سالا چیرازی که نیستش که اون سبزایی چیز دیگه است <تصفح> یا مثلا سوشی بله. اینا بچه ها اینجا سووا میرن ماهی رو میرن از میگیرن میارن میدن دست مشتری نمیذارن تو یخچال این مسموم میشن ملت نکنین آه نکنین بخش سوشی شو من نفهمیدم چرا ربطی به داشت. و اون ربطی به این داره که خب بعد راجب راجبش برنامه راجب غذا بریم که شما بگید غذا تازه مثلا دست مردم بدین که سوشی رو هر وقت ماهی رو عذاب بگیری تازه است نه یعنی هر وقت ماهی رو عذاب بگیری بعد بیاری بذاری تو سوشی بدی به دست مردم که بخورن بعد دیگه باز سس هم حالا باز میشه یه جورایی خورده مده ولی اون به بنزی که گفتین اون سنت تو مدرنیسمه این جوریه یعنی سنت رفته تو مدرنیسم یعنی اون حسیریه باد بزن حسیریه که سنته رفته توی مدرنیست که مرسدس بنزه این هم داره یه جوریه دیگه تقابل سنت و مدرنیست توی یک جاده اتفاق افتاده. ایمیل دادن سلام داداش فرشید گل آقا مدرن شدن داستان عجیبیه پدر ما از اوناییه که شدیدا با تکنولوژی جدید مخالفه اما حالا که بعد از کلی چک زدن و به اصرار بچه ها به اصرار چرا با سین نوشته خب اصرار با سین نیست که به اصرار بچه ها و فامیلی گوشی جدید براش خریدیم به زور بهش یاد دادیم دیگه کسی نمیتونه از تو فیسبوک و واتس اپ و وایبر و سایت های مختلف دلش بیاره تا اونجایی که ساعت صبح تو واتس اپ پیام میده خب این هم یه جور مدرن شدن دیگه جالب اینجاست که هر وقت بهش ایراد میگیریم که همش سر تو گوشی قاطعان میگه من اصلا از این چیزا خوشم نمیاد. خسته نباشی محسن از شیرازی ایمیلو داده. دیگه به حال دیگه پدرها اینجوریه پدرمادرای مدرنن دیگه. یعنی که شما اصلا قاطعان این که میگه اصلا این چیزا خوشم نمیاد از این چیزا خوششون نمیاد که شما دستت باشه دست اونا بشهش کار نداره مدرنیسم جدید پدر مادریه خب بزنی ببینم که یه چیزی بود من اینجا مقصد آها یه شعری بود تو اینستاگرام راشومون نوشته بود گر مدرنیته بود سریال جم صبح تا شب هی اتک هی دارک هی غول و گولم اینا اصطلاحات بازی کلاش آف کلانز هست که اتیادش باسه ملت از شیش بدتر شد خب مسیحه بارد که گرم مدرنیته بود سریال جم صبح تا شب هی اتک هی دارک هی جای یک چهار خط کتاب هی اکس شب خیر هست رنگ شورت هر بازیگری لابد مهم من نمیخواهم مدر نیز این زشت و بدی جانم میخونم چیزهای بد بده دیگه ننوشته باشه مدرنیزمی به این زشت و بدی؟ نه سنتی هم سنتی هم سنتی هر لب و گونه پروتز هر دماغی شیبدار دار هیچکس گویا نمی بیند که در پایان کار چون سریدوزی تمام دختران پرشمار این هم گشتن بعد از این عملهای مهم من نمیخواهم خواهم مدرنیزمی به این زشت و بدی سنتی هم سنتی هم سنتی هر متاه تازه یامد سریع سنیف کن با دو تا تزریغ توپ آثار آن تلتیف کن هرچه آمد زود بزن تو رگ مدرن و پیش رو یک ماساژ خارجی هم جانشین مجتمال و لیف کن من نمیخوام مدرنیزمی به این زشت و بدی سنتیم سنتیم سنتی یعنی تلفیقی از شعر نو و دو بیتی و چند تا چیز دیگه بود دیگه نه آورین آورین آورین راشومون 789 آورین جان با من منه خانوم چی میگه يبر دیگه بگو نشتیدم خانوم. سامی چی بود؟ با بابا تو ما نمیشنه تا ما نمیشنویم هیچ چی نمیگه. بگو دیگه. اوه دیره دیره سامی دیره خب به من بگو بابا نیم ساعت گذشت از برنامه هیچ کاری نکردیم بچا بدبختی داریم ما بریم سراغه چیز راه های ارتباطی راژیو پسفردا سلام علیکم به مهموناتون خوش آمد بگم رفتن. و اینکه چون این بروزم. هفته سیبیل پارتی هستش راه های ارتباطی راژیو پسفردا را من بارتون بگم پسفردا.radiofarda.com ایمیل ماست 23420 41 و 23420-733-59-55-55 شماره های ماست آبرین. در فیسبوک, گوگل کلاس ساوند کلاود, اینستاگرام هم میتونید ما رو فالو کنید و برامون کامنت بذارید و تلفن های پیامگیر ما دوسف 420-211-24-133-163 و, بله. و برای اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن بله. دوسف 420-226-21-79-39 بله. دوستتون دارم قربون همه تون رسیبه سامی هم سلام و مخصوص پرسونید اصلا زنی زده داره سامی چی صدایی هم داشتن ما شالله, ما شالله. به دنیا مو می ولی آروم آروم می ریم چی احساس تو به من چشمات میگه گه که جداییمون نزدیکه که دلت با من نیست دیگه در اینجوری دل نکر ش دران پارین مدرنی دندون پزشک کلان شخصی بود که دو تا چیز داشت. ما خب امروز داریم راجب به سلامت و اینا صحبت می‌کنیم در مدرنیز اون موقع میخوام بگم دندون پزشک دو تا چیز داشت. یکی زور بازویی که گازمور. کسی هم که میرفت دندون پزشکی بود وصیتش میکرد میرفت. چون بیهسی و عکس‌برداری و بازی ها در کار نبود که طرف گازمور رو می‌نداخ یا, یا علی می‌گفت و می‌کشید و دیگه یه وقت می‌د ریشه دندونه مثلا ای خیلی عمیق بود تو بیرون. دیگه تن دادن به جلافتایی مثل دندون پر کردن و اسب کشی, کشی و عصب کشی و ارتودنسی و سفید کردن و دندون جرم گیری آقا اینا اصلا باعث میشد مردم درباره آدم حرف در بیارن یعنی چی؟ البته یه زمان دیگه هم مردم می‌رفتن دندون‌پزشکی اونم وقتی بود که دندونای که هی می‌کشیدن تموم می‌شد دیگه دیگه تموم چیزی نمیموند بعد دوباره عزیزان می‌رفتن پزشکی، تا دندون مصنوعی بذارن اینا بود همونجوری تا برسیم به الان که دیگه شما اصلا تو برنامه روزانه‌ت دندون‌پزشکی جای خاصی داره دیگه هست کلاً توی برنامه روزانو مینویسیم اصلا نخت دندون خارجی فقط استفاده میکنیم با پول مصفاکت میشه دوتا پیتزا خرید و آقا شماها نبودین ما بودیم دیگه اون موقعها یعنی الان نه که دندون پزشکی گرونه اصلا کلاسه بگی من وقت دندون پزشکی دارم یعنی یه جوری میگی مثلا مخاطب تلویه هم میفهمه شما وزتون ردیف مایه پایه تامینه تا که هی مثلا همج چپ و راست میری دندون پزشکی می وقت دندون پزشکی دارم منم دیگه حالا اونایی که میرن هی دندوناشون سفید میکنن اونم یا مثلا ارتودنسی میکنن بعد کش دندونای مثلا ارتودنسیشون رو با رنگ لباسشون مثلا ست میکنن و اینا دیگه بماند نبودید دیگه اون زمانا با یه انبردس آقا دندون پزشک شد ما بودیم دیدیم اون موقع جاشم الان تو دهنمون هست به خدا ما از خودخواهی آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشن همین ال یادم افتاد الان دن و پزشکگاه صف میکشن همه میگن اقا رادی پسوردار هر رو علام میکنه. سلام کام را ملک مت عزیز خوبی؟ سلام فر سلام همگی چه خبرا؟ دیروز چی شد دیروز ببین تقصیر سامی بودا تقصیر ما نبود تقصیر سامی بود ببخشید خرابند آره سامی قرار بود زن بگیره ما رو میگرفت نمیشد آ... آره دیگه به مشکلات فنی و مشکلات سامی و اینا دیگه نشد با ارتباط برقرار کنیم آره آره والا فرضاً مهمترین خبر هنری در طول این روز ممانعت از اجرای ارکستر سمفونی که ایران در مراسم اختتامیه مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه جهان تو ورزشگاه آزادی بوده چی ماجرا؟ ولی ماجرا از این قراره که را بونده به اجره برنامه به علی رهبری رهبر ارکستر اصطلاح میدن که نوازنده های زن نباید روی صحنه برن. علی رهبری هم زیر بار نمیره به اتفاق گروه ساله رو ترک میکنه. یه ساعتی هم توی اتوبوس میشینن شاید حل بشه مشکل که بر برمیگردن سر خونه زندگیشون. حجا بعد پس لرزه‌ای حرفی سخنی اشاره‌ای نشده در ادامه ماجرا به این داستان. فعلا که معلوم نیست دستور از اصلا از کجا اومده بود امروز هم سخنگوی ارشاد نشست مطبوعاتی داشتم و هیچ اشاره به این ماجرا نکرده رسول خادم امروز نامه اعتراض علی جنتی وزیر ارشاد نوشتین اساتذ این کار اعتراض کرده ضمن اتهای نامش نوشته ما تسنیم داریم از ارکستر دعوت کنیم که تو مراسم افتتاحیه جام جهانی تختی حضور داشته باشه لطفاً هماهنگ کنید که دوباره از اجدای سرود جمهوری تو مراسم عادی مانع نشه عجب، پس مشکل نوازندای خانوم بودن در کل تو این ماجرا. فعلا که آره، اما اینجوری که پیش داریم می‌ریم، من بعید می‌دونم مثلاً چند وقت دیگه بگه خانم‌های خواننده گروه کورم باید موقع خوندن آهنگ دست‌سازشون رو بذارن گوشه لوپ مثلاً چاپشون بعد بخونن. مشکل حل بشه. بعید نیست. خب این هفته آلبوم جدید نداری برای معرفی؟ چرا یه چرا وقتی که fashion یه آلبوم موسیقی تلفیقی به بازار اومده به اسم آن دیگر که آهنگسازان کار مرتضی و مجید یگانه‌راد هستن، خواننده آلبوم هم زنده یاد غلامعلی پورعطائی پیش پیشکسوت موسیقی نواهی خراسان که سال گذشته از دستش دادیم، اینم بگه که چهار سال این آلبوم منتظر مجوز بوده خود استاد پورعطائی نتونسته که آلبومش رو بشناسه. عجب بسیار خوب بریم یک بخشی از یکی از کارا رو بشنویم از این آلبوم آن دگر این کار اسمش است جرس به خوانندگی غلامعلی پورعطائی و آهنگسازی مرتضی و مجید یگان راد ممنونم ازت کامران عزیز تا فردا تا فردا خدای نگهدار کشتی <تصفيق> ما بر لب در یورشید سلام بیستوی کسی دوشنب شب را زمن استقبال از نشست سران کشورهای جهان در پاریس برای نجات زمین با مروری بر سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز می‌نماییم. نماویم نگرانی ها از ساخت بزرگترین مرکز شبیه سازی حیوانات در چین و نظر کارشناسان امور حیوانی که فقط همین مونده بود بریم قناری بخریم فروشنده بگی اتفاقا چینیش هم برامون آوردن نصف قیمت ب نگاوریش نامه جدید مقام معظم رهبری به جوانان غربی و در درخواس نابزران از جوانان غربی که شما خجالت نمی کشین، هی به شما نامه میده بعد شما یه بای بای هم ماشین نمی کنین. و این تشاورش در زمینه قهر حسن روحانی و عدم شرکت وی در جلسات مجمع تشخیص مسلحت و نظر فعالان حزب قهر که ظاهرا وظیفه سازمانی رئیس جمهور اینه که از مجمع قهر کنن چون رئیس جمهور قبلی قهر بود با مجمع؟ مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می اینک مشروع خبرها با همکارم بل, بل با سلام سخنگوی وزارت ارشاد گفت خانندگانی که آمدانه با شبکه رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی و مالد نظام مصاحبه میکنند و سفارشی میپذیرند تذکرات لازم را دریافت کردند و با آنهایی که اسکار بر این ارتباط داشته باشند برخورد قانونی صورت میگیرد و از این پس برای آلبوم ها و اجراهای بعدیشان به مشکل برخواهند خورد. در واگذاریش به همین گزارش و یکی از رؤسای دست فروشان کشور گفت این اتحادیه آن را دارد که برای جلوگیری از بیکار شدن این خوانندگان که در داخل و راز کار دارند و نه در خارج تعدادی گاری با اقساط بلند مدت و این عزیزان واگذار نماید تانان زمن ماندن در آغوش نظام به نحوه شایستهی بتوانند با دستشوشی به جامعه خود خدمت نمایند پایان مشروع اخبار ای بایه. همکنون در خدمت الحکمت امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جآقای جا جاب سرنگ کا 3 رو در جریان بله. آخرین مسائل ترافیکی امنیتی قرار بله بندم سلام عرض میکنم ما در خدمتی شما هستم سرای جان میگن بل. که نیروهای یگان ویژه شما این روزا تو سطح شهر زیاد دیده میشن این دلیلش چیه قضیه بله دلیلش م. برقراری امنیت است که خب وظیفه اصلیه نیروهای ما بله بله اونی که میدونم اما با توجه به این که در کشور ما همیشه در وضعیت حساس کنونی به سر می‌بریم الان چی شده که وضعیت حساس کنونی کنونی تر یعنی چیز حساس تر شده آه، آه، یعنی. آرز کردم دلیل خاصی ندارد نیروهای زحمت کشی پلیس به وظایفی ذاتیشون عمل میکنن آقا جون سی دیگه... بابا ما میگیم نل تو میگی بدوش رنگ آ یه کلمه بگو به خاطر دایشه ما را رو راحت کن دیگه و. نه اه. خیر آقا اینا اطلاعاتی طبقه بندی شده دستمنده نمیتونم در اختیار شما قرار بدم که جوابی من به شما این است که اینا همهش انجامی وظیفه یعنی این وقتایی که تریپ دهنگلس سو... اطلاعات طبقه بندی شده واسه من ور می‌دری سرنگ بله. میخوام بزنم چی چی فرمودین شما برده. یعنی چ... چ... چی... بگذریم ولش ب... کن من اتفاقا امروز خودم تو ایستگاه مترو آزادی مورد بررسی قرار گرفتم توسط چت شما آه دستشون درد نکند چی شاد نتیجه هیچی دیگه قبل از اینکه دستشون برسه من کمربند رو تلکونیدم دیگه همه بله. شهید شدیم دیگه آقای عزیز بورو خدا تا مسخره کن شما هم چی میگی چی شد انگار من خلیفه‌ اکبر ابن میکروفون طلا هستم. آخ... هیچ‌چی آ یکیشون مت سمت من. آه... ماشاءالله غولیم بود وسه خودشه. بله دیگه آه... نیروهای ما هستن اینا دیگه بنده بهشون واقعا افتخار میکنم آقا. جم... بله با با من بخوام که سشوت همون بله... غول بیابونی رو جیت با آب توچگی من نقش زمین میکنم که وای. بله بله شما می‌تونید بله خب بعدش چی چی شو برخوردشون با شما چطور بود آقا ای چیزی این اجولات و شخصیت منه امه. که دید خیلی تحت تأثیر قرار یه خیلی مؤدبانه از من خواست آجد. که باش برم بر ب... بله. پس مؤدبان برخورد کردن نه مؤدبان برخورد نمیکرد چی اینجوری لوله‌اش می‌کردم مثل فرش می‌دادن بهش خالوشی آهای. شربت قلی ببرم بشورنی جا ای... ای... واقعا واقعاً زشت سین ادبیات شما من نمی‌فهمم قبوگو خب ببینم بعدش چی شد چی دیگه باشی رفتم کیف میفهمم یکم گشتم سر بعدشم بعدش رفتیم سراغ بازرسی بدنی بله بله بد... با دراست بازرسی بدنی خیلی کار مهمیه دیگه گفت تو باش کن هی ب... hey ما باش کردیم هی hey گفت باستر هی hey ما ها. باستر کردیم هی hey گفت باسه خلاص دیگه داشتیم جاتون خلی دلتون نخات قاچ میخوردیم خیلی بله. زحمت دیگه, دیگه زشت است آقا جو... خب بعدش چی چی شد بازرسی بدنی کاملا جامشان آره علی دیگه بعدش اومد بالا رو به بگرده سر هنگ بدبختی ما تازه اونجا شروع شد دیگه ای اصلا چرا من چه کار زشتی کردی شما نه کار زشت چه ما قلقلکی هم سر هنگ اینه بله. ایک دستشون میبالوند به پکوالی ما من هم ریسه بینم تا خنده اصلا نبودی به این بازی بازی که شما تو جدی ترین کارها با این کار رفتارتون اختلال میکنه میکنید آقا جو... اختلال چی خب میگم بل... چی چیکار کنم آخرش انقدر خندیدم دیگه اونو خودشونم افتادم به خنده دیگه گفتم بله با تو خودت به خنده دیگه عجب آره. بابا الان باورید بابا نمیشه بیا بگردم من میگم قلقلکم میاد الان بله بله. بیا بگرد ببینید خودی بذار من باشم ندا خدافی بله بابت تشکرت بله. توجه شما تو بارنمیل یاد اسرانگی یاد خدا نگهدار بیا بیا یه دقیقه بیا من بگردی خیلی بیا. خواه پس پا شما پاها تو باز کن ببینم چه علاقه یه داری شما من پاها با با رو با با باز کنم با میگم با یه بالا تنر بگردیم بله م... بیا بیا بیا با با با باشی نه باز شما پا باز بشه پا باز پا باز بشه بله بله خب آماده شما میخوام بگردم بیا اصلا دستاتو خ... میگیری بالا بخ... بگردی من خندم بگیری بله بایی سره گیری نه چی نکنه اه... آی... <یا��> آقای چه چه خجال ازده بارو خوده دست درم بگه بالا به بالا اینشانه گروبان بشید سره نکنه وای وای. مورده بخش سره نکنه اینجا آقای عزیزین شما چرا کن کن تو آقا زشت مردی گن بهشوما رجبت عجب داره ما آقا مسالیم بید تو شکر بید داره ناگرده عجی سلام خسته نباشی شنیده بودیم کسی علیکو. به کسی قرض داشته باشه میره کارت به کارت میکنه یا پولی میخواد واریز کنه میره بانک واریز میکنه بله اینو نشیده بودیم که آقا به امامزاده میخواد کمک کنی برو توی سایتش کارت به کارت کن با کریجیت کارت پول بریز به حسابش <تصفح> جلل خالونیای مدرنیزمه دیگه و بله. آقا کجاشو دیدی؟ چند وقتی امامزاده ها اینترنتی هم شفا میدن یعنی همون کافی پول به کارت کنی بعد روی زریح کلیک کنی کلیک رو همجید نگه داری تا ایشال کاناک بشی و همونجا پشت مانیتور دیگه شفا میگیریدی این امکان البته تو نسخه بعدی امامزاده آنلاین گنجونده میشه الان نسخه نیست اما مدرنیته تو حوزه سلامت و پزشکی خیلی خوب زندگی آدم‌ها رو تغییر داده. قدیم‌ها آقا دیگه طرفی 60 به بالا داشت، قدیم قدیم قدیما مثلا یه مریضی چیزی می‌گرفت، اقوام و نزدیکان دیگه خرج دب و درمون نمی‌کردن براش. می‌گفتن می‌شدن دورش طرف تو بدسر بیماری هرکسی یه پندی نصیحتی چیزی وصیتشام میکرد و بعد دیگه می‌خوابوندنش رو به قبله که جونش کامل از بدنش در بره. الان آقا مدانای خودمون 60 سالش ما شاءالله هنوز هلیکوپتری می‌زنه برای خودش رو استیج. یعنی تو دنیای مدرن اصلا مفهوم پیری و کهولت سن و نم نم اینجوریه اصلا عوض شده یارو 90 سالشه میبینی چه میگه 26 سالش یعنی اینقضا این پوسته شده از چهار اصلی کشیده که مثلا خالکوبی باشه انز نوک ناخونه شده انز کف دست بعدم کسی دیگه به این سادگی جون به اسرائیل نمیده که قربون شکلت الان امکانات پزشکی پیشرفت کرده یعنی امید به زندگی یک آدم مثلا 100 ساله که دور از جونی شما سرطان گرفته از امید به زندگی اون جوونی که 200 سال پیش سرما می‌خورد الان بیشتره تازه یارو بعد دیویز سال بمیرن بیخیالش نمیشن میبندنش به چلتا دستگاه و, و زورجی میخوان زنده نگشت دارن اینه که طرف مثلا مرده منطقه هم قلبش میزنه هم نفس میکشه هم شکمش کار میکنه هم دستشتکون میده هم میخنده هم حرف میزن ولی همش با دستگاه البته دستگاه خندیدن و حرف زدن مردن و اختراع نشده ولی حالا احتمالاً میشه بزودی. اینه که مفهوم مرگ هم تو دنیای مدرن عوض شده یعنی اسرائیل یه زمانی داسی رو دوشش بود مثل علف حرف این آدما رو درو می‌کرد میزد میرفت الان برای از ریشه در گرفتن جون بعضیا بعد لودر و بیل میکانیکی بیاره. بعد میگن کلی هم بابت این چیزا بنده خدا سختی کار می‌گیره از خدا. خیلی سختشه. از نشانه های مدرن شدن یکی هم نگرانی برا سلامتیه نگرانی سادم نه نگرانی از نوع ژانر وحشت مامان این دوستم سریا از همون بچهای که من یادمه وارد خونهشون میخواستی بشی روزنامه پن میکرد از دم در تا تو هموم بعد اونجا لباساتو عوض می کردی لباسایی که تنت بود فوری میرفت بر شستن خودتم یه دوش میگرفتی بعد تازه میتونستی بگی وارد خونه شدم حالا این مشکل باز به با مرور زمان حل شد ولی پریشبا که سریا رو دیدم نگران مادرش بود گفتم چی شده خدایی نکرده سرطانی چیزی گرفتن گفت نه ولی میترسم بگیره گفتم مگه سرما خوردی آخه دختر گفت روز توی سایت خوندم این شیر پاکتیه سرطان زاز. مامان مامانم هم که هر روز داره از این شیرا میخوره گفتم بی خیال گفت تازه مرغ و هم که همه هورمونیه اینم هم زاست گفتم اونم موی زائد بیشتر تو چرا اینجوری شدی مثل مامانت زیادی نگران سلامتی شدی یا گفت قرار نیست هر کی مثل تو ژولی پولی نیست زیادی نگران باشه سراتونو جدی نگیری اون جدیت میگیره باشه باباتم دفعه دیگه چه اینکه بیای پیش من شورای سلامتی بدی بهشون هم پای اینترنت از این اطلاعات زد و نقیز این سرطان اون سرطان بخون والله هانگی هندی آهنگ هندی هنی برای پریبور زالان پریبور سلام هستی آره هستم سلام فرشید جان سلام به همگی آره چی شد قضیه چی امروز یه عکس ورسید امروز منتشر شده بود از علیه کفاشیان با لباس هندی تو سایت های مختلف خیلی بامزه بود <تصفيق> نمیشد ازش گذشتم من به سام کفتم این دیروپس کنه شنمنده ها خودشون تجسرم کنن آقا یه کفاشیان آقا یه رو با لباس رو هندی آره. آره. آره. فکرم آره. همون دیروز آره. که خبرش دادی چند ساعت خودشو گم کرده بود آقای کفاشیان یه گوریز غیر فوتبالی داشته دیگه تو دلی رفته لباس تو آره همون شاید من تقیقات هندی فوتبالی می‌کرده واسه بهبود مصالح فدراسیون شاید راستی فرما تیممون امروز بازی داشت تو لیگ تیم جلال هم خب بازی کرد چه خبر از هوشی بازی ها؟ هر دو تا تیم مساوی کردن یک یک پرسپولیس با نفت یک یک استقلال جلال هم با صفای یک یک استقلال هم صد جاته یه حاشیه یه داشت واسه مجبورم بگم به هر حال یه هوادار پرسپولیس تو ورزشگاه نفت در اثر حجوم همه هوادارا رو همه خلاصه ایث قدری میکنه اینکه فایت ورزش سه نوشته آره تأخیر ماموران اورژانس باعث فوت میشه ان که خبر سعد نبشته باشه امیدواریم امیدواریم خب پس دو تا, دو تا تیم هر دوشون مساوی کردن و کم نبرد استفاده اصلا این دوتا تیم آگه همیشه تو همه مسابقات هم مساوی میکردن نصف درد سرمون حل بودا فریبورگ آره،, آره آره آره دیگه چه خبر خبر دیگه هم داری یه حبر هم بود که کمی هم به موضوع برنامه نزدیک که اون یه نوع دوپینگ جدید در بین فوتبالیستا برسوم شده دوپینگ از طریق تزدیق به زیر ناف یه طوری با مهتود و او او او تکنولوژی جدید که اصلا تو آزمایش ها معلوم نمیشه و از چشم ماموران کنترل مبارزه با دوپینگ هم دور میمونه عجب ایشالله در همین حد زیر ناف اون دیگه بمونه بیشتر از این پیش نرن دیگه دوستان. خوب نیست. ممنونم از حضرت عزیز، بد خدافظی می‌کنم تا فردا. تا فردا خدا نگهدار. حال میده ایرانم یه خنجر بر از پشت بزنه به روسیه خنجرش گازی باشه بازار گاز ترکی و اروپا رو دستش بگیره این پوتین رو دست بخوره اخر روسیه از وقتی که با شمشیر ترکمنچای سر ایران از تنش جدا کرد دائم داشت از پشت به ایران خنجر میزد آی حال میده یعنی نظام وجودشو داره این کارو بکنه آقا ادا رو نداره دنیا همین یه دونه روسیه برای آقا پشت خنجر بزنه نه خدای خودت بزن جای آقا میزنی ترکیه که خنجر زد ناتو پشتش بود ایران اگه روسیه نباشه ونزوئلا پشتشه فقط اونم که تا هفته دریا عمر اما بریم به سراغ خطبه‌های نماز جمعه همین این هفته که آیت الله کرمانی گوریزی هم زدن به دیدار پوتین از رهبر انقلاب گفتن که کسانی مثل پوتین مجذوب رهبر ایران شدند اینکه چرا مجذوب شدن رو اینجوری توضیح دادن باید مجذوب باشند. برای اینکه یک رهبری این چنین در دنیا ندیدند در خیلی از کشورها رهبران برای اینکه که حکومتشون بماند خوندیزی میکنند. آدم میکشند. رویه رهبران خیلی از کشورها اینه. اما اینها بله. آمدن ایران رهبر ایران رو میبینند. بله. عجب چه رهبری؟ عجب چه رهبری؟ یعنی چه کرده این رهبر ما بادل پوتین مگه امام جامش ازش تعریف کنه که ندونه فهم میکنه معظمله مثلا با یه شاخ گل در دست همچید دالای لاماوار گوشهی نشستن دارن بر دلها حکومت میکنن این سپا بسیج و دمدسکای اطلاعاتی و تشکیلات سرکوب و بگیرو به بند و نام در حقیقت جلوه از تجلی محبت آقا هستن وگرنه برای آقا حکومت کردن معزمله بودن از آب بینی بز هم بیارزشتره منطقه گای برای همین آب بینی بز با اصله جنگی به مترزین شلیک میکنن و کریزک را میندازن این هم هم آدم تو حسر و حبس و اینا نگه میدارن ادامه میکنن حالا یه زمانی جوخه ترور هم داشتن خارج از کشور عناصر معاند رو به درک واصل میکردن اینها البته برای حکومت کردن نبودا؟ آره پوتین میدونه آقای ما اصلا فرقش با رهبران بقیه کشورها همینه که راضی نمیشه برای حفظ حکومتش خون از دماغ کسی بیاد آخه ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه این اینم از رمز موفقیت آقا در جا شدن توی دل پوتین از زبون امام جمعه تهران بود گفتیم در جریان باشین بعد از من کسانی می, می آیند که در ظاهر ودکا می نوشند در باطن مجاهدین راه حق هستند امام خمینی صحیفه زور صفحه هجده سیاسی تقدیر از شخصیت بزرگ و بلند مرتبه مجاهد راه حق و ادالت و یک مبارز رشید است را حاضر برادر رزمنده ولادیمیر پوتین در پوتینیه تهران برگزار خواهد شد ما همه ی علاق مندان به این شخصیت بزرگ در این مکان جمع خواهیم شد و با سردادن شعارهایی چون ولادیمیر میر خودشیه خودش یه پارچه خره پوتین ضد داعش با اختلاف فاحش روسیه روسیه خدا به همراه تو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 روزگارتون پر از ترانه و عشق و یار و دیار تا فردا اما شاید بتونم چشمتو از بر بکنم چالای کنج لبت هلال ماهه آزر امریه که دل برای خنده ها